شراب تلخ میخواهم که مردفگن بود زورش که تا یکدم بیاساویم ز دنیا و شرشورش سمات دهر دون پرور ندارد شهد آساویش مزاق هرس و آزهی دل بشو از تلخ و از شورش بیاورمی که نتوان شد زمک را آسمان ایمن به لعب زهره جنگی و مر ریخ سلح شورش کمند <تصفيق> سید بهرامی بیافکن جام جم بردا که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش بیا تا در می صافی راز ده بن مایم به شرط که نن مایی بکز تبان دل کورش نظر کردن به درویشان منافقی بزرگی نیست سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ وریچن خنده می آید بدین بازو بیزورش